درود بر شما من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست علف با کمک دوستانم می کنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامه ای رو برای شما روایت کنم در این قسمت از پادکست علف ریچارد ثوم اجرا نمی شود از سر رو خواهید شنید قبل از شنیدن این نمایشنامه خوبه که اول با نبیسندش آشنا بشیم ماتهی ویشنیک در 29 ژانویه 1956 در کشور رومانی به دنیا آمد. در دوران خفقان حکومت کمونیستی ادبیات به نظرش تنها دنیای آزاد و در دسترس بود و این باعث علاقش به ادبیات و تئاتر شد. یک شیفته آثار کامو، بکت، کافکا، یونسکو و داستایفسکی شد. هم به تئاتر ابزورد و گروتسک علاقه داشت و هم به سورئالیسم و رد پای همه اینها در آثارش دیده میشه مخصوصا تو همین نمایشنامه‌ای که قرار بشنوید از سال 1977 شروع به نوشتن نمایشنامه کرد و تا 10 سال بعد یعنی سال 1987 تعداد زیادی نمایشنامه نوشت که انتشار همه اونها در زادگاهش رومانی ممنوع اعلام شد اما همیشه نمایشنامهاش محبوب بودند و به صورت زیرزمینی بین افراد دست به دست می شدن. ویشنیک به شدت به پتانسیل هنر و ادبیات برای استادگی و مقاومت در برابر توتالیتاریزم معتقد بود و همیشه در کارهاش به نقد قدرت مخصوصا رژیمهای کمونیستی سابق پرداخته که همین نمایشنامه ریچارد ثوم اجرا نمی شود از این قاعده مستثنا نیست و یکی از معروفترین نمونه هاشه در سال 1988 به فرانسه مهاجرت کرد و درخواست پناهندگی سیاسی داد که پذیرفته شد و شهروندی فرانسه رو گرفت از وقتی به این کشور رفت همه آثارش رو به زبان فرانسوی می نویسه. بعد از سقوط حکومت کمونیستی در رومانی ویشنییک به یکی از مشهورترین نویسنده های رومانی تبدیل شد و آثارش در رومانی مورد استقبال زیادی قرار گرفت و بارها و بارها روی صحنه رفت ویشنییک الان به عنوان یک روز در رادیو بینومللی فرانسه کار میکنه ریچارد سوم اجران نمی شود سه شنبه با مادوکس داستان خرس پاندا به روایت یک ساکسیفونیست، پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بسنی و تماشاچی محكوم به اعدام از جمله آثار نمایشی ویشنیک هستند. علاوه بر آشنایی با ویشنیک به نظرم لازمه با یک شخصیت مهم دیگه در تاریخ تاتر آشنا بشیم که به فهم بهتر این نمایشنامه کمک میکنه. سیولد میرهولد. سِوولِت میرهولد کارگردان، بازیگر و تهیه کننده تئاتر روسیه و شوروی سابق بوده. میرهولد در سال 1896 زیر نظر ولادیمیر نیمیروویچ دانچنکو دوست و شریک استانیسلافسکی، شروع به بازیگری در تئاتر کرد و این کار شیش سال ادامه داشت. در طول این مدت میرهولد حتی در اولین اجرای نمایشنامه مرغ دریایی اثر چخوف هم نقش اصلی رو بازی کرد که نقش مقابلش همسر چخوف بود بعد از اون شروع کرد به کارهای مستقل هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان میرهولد یکی از افرادی بود که به نمادگرایی در تئاتر اعتقاد زیادی داشت و شروع کرد به نگاه دوباره و نوآورانه به آثار کلاسیک شیوه بازیگری میرهولد با اسم بیومکانیک شناخته میشه و بعدا حتی مدرسه هنری هم براش تاسیس کرد تا شاگردانش رو اونجا آموزش بده بیومکانیک کاملا با روش استانیسلافسکی یعنی بازیگری متد در تضاد بود متد اکتینگ روشیه که سعی میکنه تجربیات بازیگر رو با تجربیات کاراکتر پیوند بزنه و توش بازیگر از تجربه های خودش برای بازی نقشش استفاده میکنه. بهش بانک عاطفی هم میگن اما در بایومیکانیک یا بیومکانیک بازیگر فارغ از تجربیات خودش یاد میگیره بدنش و اجزای صورتش رو چطور حرکت بده که احساس خاصی رو به نمایش بذاره. خیلی جذاب بحث و گفتگو در مورد متوت های بازیگری و تفاوت اونها با هم دیگه که امیدوارم فرصتی پیش بیاد که بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. به هر ترتیب میرهولد یکی از اولین هنرمندانی بود که انقلاب بلشویک را پذیرفت و در سال 1918 به حزب بلشویک پیوست. همون سال به خدمت شاخه تاعتر در کمیساری تحصیلات و روشنفکری در اومد و با اولگا کامنوا رئیس شاخه تاعتر روسیه رو کاملا ملی سازی کرد و تحت کنترل حزب بلشویک در آوردند میرهولد در سال 1923، سالون تئاتر خودش رو هم تأسیس کرد که تا سال 1938 به کار خودش ادامه داد در اوایل دهه سی و چند سال بعد از سرکار اومدن استالین یعنی 1924 استالین تلاش کرد هنر آوانگارد و فرمالیزم رو ممنوع کنه فرمالیزم یعنی کاری که توش به شیوه اجرای اثر بیشتر اهمیت داده بشه تا به مفهوم و پیام سیاسی اثر میرهولد خودش متوجه شده بود که دیر یا زود قرار به فرمالیست بودن متهم بشه علاوه بر این مخالفت خودش رو با استالین هم علنی کرد که همین مسئله باعث بسته شدن سالن تئاترش در سال 1938 شد همین موقع ها استانیسلاوسکی میرهولد رو به همکاری دعوت کرد که خب به خاطر اختلاف سبک این دو و نگاهشون به تئاتر باعث تعجب خیلیا شد همچون که گفتیم شیوه کاری این دو نفر خیلی با هم دیگه متفاوت بود. در سال 1939 میرهولد دعوت شد به لنینگراد برای طراحی یک نمایش بزرگ. اونجا یک سخنرانی پرشور دیگه هم کرد که جزئیاتش جایی ثبت نشد. اما بعد از اون به محض بازگشت به مسکو دستگیر شد. همون زمان افرادی به خونش هجوم بردن و همسرش زناییدار رو با ضربات چاقو به قتل رسوندن. خود میرهولد زیر شکنجه‌های شدید قرار گرفت و اونجا به جاسوس بودن بریتانیا اعتراف کرد و در 2 فوریه 1940 به جوخه آتش سپرده شد. یک چیز دیگه‌ای که خیلی توی این نمایشنامه بهش اشاره میشه، یک نمایشنامه دیگه است به نام ریچارد سوم اثر شکسپیر. ریچارد سوم یک شخصیت واقعی برادر پادشاه ادوارد چهارم یک فرد قوزدار و چلاقه که قصد داره با انباه و اقسام خیانت ها و توته ها تاج و تخت انگلستان رو به دست بیاره شخصیت ریچارد ثوم معمولا شخصیتی حسود و شرور نمایش داده میشه خب حالا که با فضا و زیست نویسنده نمایشنامه یعنی ویشنیک و شخصیت اصلی این نمایشنامه یعنی میرهولد آشنا شدیم میتونیم روایت این نمایشنامه رو آغاز کنیم اسم دیگه این نمایشنامه سحنه هایی از زندگی میرهولده و واقعا هم نمایشنامه سحنه هایی از زندگی میرهولد رو روایت میکنه. نمایشنامه 21 صحنه یک داره و به اون شکل داستان خاصی پشت این صحنه‌ها نیست. قصه این نمایشنامه به ظاهر ساده است ولی حرف زیادی برای گفتن داره و البته نمایشنامه خیلی عجیبیه. به هر حال نمی خوبیه به نظرم یکی از بهترین کارهای ویشنیه که گوش بدید و لذت ببرید ریچارد سوم اجران نمی شود یا صحنه‌هایی هایی از زندگی میرهولد اثر ویشنیه که. اسپانسر این قسمت از پادکست علف ویپاده تحصیلاتی که نه زامن میخواد نه چک نه سفته و توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد ویپاد یا ترا بانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه همه‌ی کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همه این کارا رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونه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 کافی اول اون رو نسب کنید یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنید. لینک مربوط به وبسایت سایت ویپات رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. میرهولد وسط صحنه روی یک صندلی چرت میزنه. دختر جوونی که پاش تو گچه و سوفلور نمایشه از سوراخش بیرون میاد و میرهولد رو بیدار میکنه. سوفلور یا سخن رسان در اصطلاح معنی کلمه سوفلور به کسی در پشت صحنه تئاتر میگن که کارش یاداوری ها و نوبت بازیگرا به اوناست. سوفلور میگه رفیق میرهولد بهتر پاشید سه ساعته دارید همینطوری چورت میزنید دو بار نزدیک بود بیافتید من رو به جا نمیارید نه من زنایدا هستم میرهولد گیج میگه که چی نه ببخشید زنایدا سرگیجه دارم اعضای کمیسیون چی گفتن زنایدا میگه چیزی نگفتن همشون رفتن ظهر رفتن نهار بخورن و دیگه هیچ بر نگشت حالا هم شب شده. شما هم کنید برگردید خونه. همسرتون حتما نگرانه. میرهولت تلاش میکنه که یادش بیاد. میگه که گمونم خوششون اومده بود. همین چند دقیقه پیش همه شون داشتن تشویقمون میکردن. صدای تشویق میشنویم. در اتاق تانیا و میرهولت هستیم. گاهی نور چرخان میفته توی اتاق. مثل نور چرخان فانوس دریایی یا آژیر ماشین پلیس تانیا که باردار بلند میشه و به حمام میره و در همین حین میرهولت هم بیدار میشه و میره جلوی پنجره سر و کله دو مرد پالتو چرمی تو اتاق پیدا میشه فرماندهشون یه هم یهو پشت پنجره همینطور که دو مرد پالتو چرمی دارن وسایل میرهولت رو میگردن میرهولت و فرمانده با هم صحبت میکنن فرمانده میگه این نمایشنامه‌ی ریچارد سوم شما، معرکه است رفیق. چه قدرتی، چه شجاعتی! برای همینه که حزب مردانی مثل شما رو دوست داره. مردانی مثل بولگاکوف، گورکی، شما فساد ناپذیرید. میرهولد میگه امیدوارم کمیسیون برای مجوز دادن خیلی معطلمون نکنه. الان دو روز در حال بحث و مشورتن. فرمانده میگه ای بابا رفیق، نگران نباشید. کمیسیونا برای دیگه، برای بازبینی و بررسی. شما چطور میتونید با این هنر بزرگتون نفس ما رو بند بیارید این فقط یه نمایش نیست یه پیشرفت تاریخیه چه مزخرفیه این پیپ تا یه ذر باد خاموش میشه آتیش دارین میره پیپ فرمانده رو روشن میکنه میدونین هنر برای من گوش دادن به صدای درونه الان یه هفت از کمیسیون داره نمایش ما رو میبینه اول یه کمیسیون بود بعد کمیسیون دوم اومد بعدش سوم بعد از گفتن این دیالوگ ها میرهولد اطرافش رو نگاه میکنه اما فرمانده و مردهای پالت و چرمی ناپدید شدند. تو همون اتاق خواب بعد از رفتن فرمانده ریچارد سوم با گوزی برپشت از همان بیرون میاد و لنگان به میرهولد نزدیک میشه. دارم بهت میگم الان وقتی خوبی برای اجرای ریچارد سوم نیست. تو خطرناک شدی؟ تو کشور ما هر کی بتونه مردم رو بخندونه یا به وجد بیاره خطرناکه بهت که گفتم اوتل رو بردار قشنگه غمگینه از عشق میگه میرهولد میگه ولی نمایشنامی ریچارد سوون که ممنون نیست تو کشور ما دارن نمایشنامه شکسپیر رو تو مدرسه و دانشگاه درس میدن همه نمایشنامه هاش هم ترجمه شدن تو همه کتاب و کتاب هم میشه پیداشون کرد ما توی کشور آزاد زندگی میکنیم که توش کارگرها سرنوشتشون رو با دستای خودشون میسازند. تو از چی میترسی ریچارد؟ ریچارد به طرف پنجره میره و خودش رو از پنجره پرت میکنه بیرون. دوباره در حمام باز میشه و چند تا قربانی ریچارد سوم از اونجا میان بیرون. مرده های متحرکی با لباس های خونی. تانیا هم بینشونه و لباسش مخصوصا دروبر شکم باردارش خون شخصیت ها میان جلوی صحنه و به چشم تماشاگرها خیره میشن. میرهولد میگه تانیا تو هم دیدی؟ فرمانده اومد اینجا و من پیپش رو براش روشن کردم. کم چیزی نیست. تانیا که صدای خودسانسوری میرهولد هم هست میگه من دیگه زن تو نیستم قاتل. من صدای خودسانسوری تو هم. تو از ریچارد سوم یه شخصیت مثبت ساختی. میرهولت وحشت زده میگه نه نه شما نمیتونید وارد سر من بشید تانیا یا همون صدای خودسانسوری میگه رفیق میرهولد درون سر شما قلمروی طبقه کارگره تو فکر کردی حزب متوجه تقلبت نشده منش هنری تو پر از نشو است فکر کردی چشم حزب نافذ نیست میرهولد که حسابی وحشت کرده میگه رفقا تفسییرهای شما اشتباهه با این همه من انتقاد از خود میکنم آره نمایش تو سر من با یه جور آشفتگی متولد شد تو تئاتر از این اتفاقات زیاد میفته من تم به این مسخره بازی نمیدم من تو سر خودم آزادم هیچ کس نمیتونه همینطور علکی وارد سر من بشه سر من یه فضای شخصیه انتقاد از خود مفهومیه که توی ایدولوژی مارکسیسم لنینیزم به وجود اومد اولین بار جوزف استالین در نوشته خودش یعنی مبانی لنینیزم به این مفهوم اشاره کرد. گفته میشه خیلی از افراد حزب که حزب باشون به مشکل خورده بود مجبور بودن توی سری از جلسه های انتقاد از خود شرکت کنن و به صورت شفاهی یا نوشته یعنی بنویسن این رو کتبی اشکالات باورهای خودشون رو اعتراف کنن و دوباره با قوانین و باورهای حزب تازه کنن تانیا یا صدای خودسانسوری میگه که نه توی کشور ما دیگه مالکیت شخصی معنا نداره چرا از نظر شما ریچارد سوم یک شخصیت مثبت و شوخه؟ چرا شخصیت هایی که به دست ریچارد سوم کشته شدند تا آخر نمایش می ایستن و ظلم می زنن تو چشم تماشاگر؟ میرهولد سعی میکنه سازش کنه. رفقا من انتقاد از خود میکنم. ریچارد سوم خیلی از من قوی تر بود و من نتونستم حرکاتش رو کنترل کنم. بر ممنون که تو سر من هستید و هوام رو دارید. میرهولد در صحنه نمایش روی صندلی نشسته و ریچارد سوم با قوزش بهش نزدیک میشه میرهولد میگه بچر قوزت رو ببینم نه خوب نیست خیلی بزرگه تانیا یه قوز کچیکتر میخوام تانیا قوز رو عوض میکنه ریچارد داره دیالوگش رو میگه اما میرهولد بازم راضی نیست و بیقراره نه اینطوری نلنگ معمولی را برو نه این قوزم خوب نیست تانیا یه گوزه کچیکتر بیار نه اصلا گوزو کلهم برداریم ببین ریچارد تو دیگه گوز نداری اون شنل هم در بیار ریچارد میگه ولی این شنل خوشگله که تازه کمیسیون منو با گوز و این شنل دیده میرهولت میگه نه من یه ریچارد معمولی و کاملا انسانی میخوام تانیا کلاه و زنجیرش هم بگیر ازش ریچارد با اکراه میگه ببین وسوسی کاملا داری لختم میکنی. اینطوری چه سوالی نمیمونه واسم اما میرهولد توجهی نمیکنه با دست به تانیا اشاره ای می میکنه و تانیا دستکش و کمربند ریچارد رو هم میگیره میرهولد و رئیس کمیسیون توی یه جور اتاق بازجویی هستند یه نفرم با ماشین تحریر پرسر و صدایی داره سوال و جواب ها رو تایپ میکنه رئیس کمیسیون میگه بفرمایید رفیق میرهولد زیادتون نمیکشه خب این نویسنده انگلیسی ویلیام شکسپیر کار شما رو با دقت ما دنبال میکنیم. کار شما در خدمت طبقه کارگره. فقط برای اینکه همه چیز روشن باشه از سرویسمون خواستیم پروندهی نویسنده رو برامون بفرسته. عکس شکسپیر رو به میرهولد میده. خودشه نه؟ میرهولد تایید میکنه. رئیس کمیسیون میگه خب میخواستم همین رو بشنوم. هر چند میگن این عکس معتبر نیست. هیچ کدوم از عکسای این نویسنده معتبر نیست. میگن اون مجسمش توی استراتفورد، همونجا که دفنش کردن هم معتبر نیست. همه ای اینا رو میدونستید رفیق میرهولد؟ میرهولد میگه که میدونسته. رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب. این رو هم میدونستید که هیچکس هیچ جا نامه‌ای که به دست شکسپیر نوشته شده باشه ندیده؟ میدونستید دستنوشتهای نمایشنامه‌هاش هم در دسترس نیست؟ انگار یا روی شبهه. شاید این خرد بورژوای استراتفوردی نویسنده این نمایشنامه‌ای که بهش نسبت میدن نباشه ها میرهولد میگه که ولی با این همه آثارش بیشتر از هر کسی توی دنیا روی صحنه میرن رئیس کمیسیون میگه رفیق ما فقط داریم به وظیفمون عمل میکنیم به هر حال شما این کار نمیکنید طرف خورده بورژوا بوده درسته میرهولد میگه نه رئیس میگه بسیار خوب دقیقاً به همین می‌خواستیم برسیم ممنون رفیق میرهولد اگه اطلاعات دیگه ای نیاز داشتیم خبرتون میکنیم میرهولد میگه نه رئیس کمیسیون میگه میدونید در حملت کدوم نقش رو بازی میکرد؟ میرهولد میگه نقش روح رو بازی میکرد رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب به همین میخواستیم برسیم میرهولد تنها روی صندلی همیشگیش روی صحنه رها شده که مادرش با یه سینی چای و یه چمدون وارد میشه بیا چای بخور کوچولوی من خیلی دلماتیش میگیره میبینم می‌بینم اینقدر خرکاری میکنی بعد یه پولیبر از در میاره و میرهولت رو مجبور میکنه اونو بپوشه میرهولت که خیلی هم معذبه میگه که برای چی اومدی اینجا مامان مادرش میگه عجب بادی روی صحنه میاد آها آه کاش رام کردن زن سرکش رو اجرامی کردی رام کردن زن سرکش هم اسم یکی دیگه از های شکسپیر مادرش میگه که این نمایشنامه شاده از عشق میگه منو خدمات کشف موثر سازی بدخواهانه فرستاده، اصلا هم از این بابت چرمنده نیستم. از هم خواستن یک کار مفید برای حزب انجام بدیم. نمایتماع های شکسپیر باید با لباسای زمان خودشون اجرا میشن چرا میخوای یه برگ ظالمانه از تاریخ رو با لباسای امروزی اجرا کنی؟ ها؟ این با این سروزش تقریبا شبیه یکی از همبتتن خودمونه و این خوب نیست چون میتونه باعث اختلال و اشتباه بشه تو که نمیخواستی موثر سازی کنی ها میخواستی و بعد؟ هود رو میزنه. ریچارد سوم هم که همون دور رو بر چندتا چک لایه این کتکهایی که میر میخوره میخوره. میگه می که اصلا قصدش این نبوده. مادرش میگه خوبه طبقه کارگر ما میدونه که تو با منطق بدخواهانه و برژوایی کار نمیکنی. مبنای کارگردانی تو کنایه ها و اشارهای ممنتظل نیستن پس به شکسپیر خیانت نکن اینقدر کنایه نزن. ملغمه هم درست نکن از تو چمدون شمشیر، شنل، کلاه و دستکش ریچارد سوم سو که توی سحنه های قبل تانیا ها ازش گرفته بود رو در میاره و به ریچارد میده بعد چمدونش رو بر میداره و میره ریچارد سوم سو داره لباس های تاریخی که مادر میرهولد آورده بود رو میپوشه که اون دوتا مرد پالت و چرمی میان و با خودشون یه تخت پادشاهی برای دکور صحنه میارن در طول این صحنه همینطور میرن و میان و برای دکور چیزای مختلف میارن میرهولت میگه که دست نگه دارید من قبلا انتقاد از خود کردم مردای پالتو چرمی میگن ما برای انتقاد از خود تره هم خورد نمیکنیم ما از طرف خدمات پاکسازی ایدئولوژیک ظاهر اومدیم دکور لباس و وسایل صحنه رو پاکسازی میکنیم اینجا رو برگه ماموریتمون هم نوشته بزاق مسموم ایده های رفیق میرهولد که روی همه وسایل صحنه گسترده شده پاک خواهد شد. ریچارد سوم سراسیمه به کمک دوتا مرد میره و بهشون میگه من هیچ نکردم ها من پاک پاکم. فقط از ایده های کثیف این پیروفی کردم. گول خوردم رفقا. فریبم دادن. بگو ببینم رفیق میرهولد چرا از من این شخصیت مثبت ساختی ها؟ میرهولد میگه چون تو شر خالص رو نمایش میدی. بدون بار ایدئولوژی ریچارد سوم جیغ میزنه که شنیدین به همه چی اعتراف کرد میرهولد میگه من تو سرم تنها نه تو سرم تنها نیستم اونا وارد سرم شدن ببینین اگه همش تو سرم بمونین من این سرو سر میترکونم خودکشی میکنم تانیا و میرهولد در اتاق خوابشون هستن تانیا کیسه خرید رو زمین میذاره و روی تخت دراز میکشه میگه این بچه موقعی خرید تو شکمم سوت میزد. ولی همه تظاهر میکردن نمیشنوند. خیلی خجالت کشیدم. به زنای حامله دیگه هم برخوردم. ولی بهشون نزدیک نشدم. چرا زنای حامله اینقدر با وسواس از هم دوری میکنن؟ میرهولد اصلا حواسش نیست و انگار با خودش حرف میزنه. نه کافی نیست. شاید آدم تو سرش نمیتونه آزاد باشه. شاید ما فقط تو قلبمون آزادیم به نظرت حالا که تو سرم هستن قلبم هم در خطره کی بود بله یه نفر دیگه داره تو سرم حرف میزنه تانیا میگه بعضی وقتا حس میکنم داره تو شکمم توف میکنه یه طور با تحقیر آخه چرا؟ میرهولت میگه خواهش میکنم چرا رو خاموش کن این نور نمیذاره فکر کنم تو این کشور فقط میشه تو تاریکی فکر کرد تانیا های خرید رو باز میکنه انگار برای سفری وسیله آماده میکنه تو کیسای خرید صابون، جوراب و شکره میگه باید رویای نیمه شب تابستان رو کار میکردی قشنگه پر از پریه ساده است میرهولد میگه همیشه فکر میکردم قلب آخرین حلقه نجات ماست ریچارد کجایی؟ قلب باید یه سنگر باشه جلوی دیوونگی چرا قلب اینقدر زود سر رو رها میکنه؟ تانیا میگه که نمیخواد بیاد بیرون من همینطور دارم گنده تر میشم اونقدر گنده میشم که دیگه نمیتونم راه برم ولی اون راضیه. من برای اون قفصم یا اون قفص من شده سر در نمیارم تو از اون دوتا بازیگر خاصی طوری رو سحن را برن انگار تو قفص زندونی شدن فکر کردی حزم نمیفهمه میرهولت میگه اگه سر قفس قلبه باید سر رو ترکوند آره میدونم هر شهروندی وظیفه داره واسه خدمات شناسایی قفسهای پنهان در آثار هنری کار کنه. میرهولد و ریچارد سوم رو روی صحنه بینیم. ریچارد کاملا پوشش تاریخی داره و با میرهولد دیالوگاش رو تمرین میکنه. تانیا به صحنه اضافه میشه و کلاههایی رو آورده تا روی سر ریچارد امتحان کنه. ناگهان از توی شکم تانیا صدای وحشتناکی میاد هر سه حیرت زده به هم نگاه میکنن میرهولت میگه خب خب جوابش رو بده جنین از توی شکم تانیا شروع به صحبت میکنه خب جوابش رو بده خب جوابش رو بده ریچارد سوم میگه این اصلا طبیعی نیست گفتم که باید حملت رو کار میکردی جنین نعره میزنه که باید هملت رو کار می کردی، باید هملت رو کار میکردی. میرهولد و ریچارد گوششون رو میچسبونن به شکم تانیا. ریچارد میگه من که چیزی نشنیدم. میرهولد میگه پس کی تا الان داشت حرف میزد؟ رو میکنم به تانیا. تو چیزی شنیدی؟ تانیا میگه نه. میرهولد میگه پس ما چی نشنیدیم. هدر میرهولد با یه چمدون وارد صحنه میشه. سلام بچه‌ها. صحنه جنگالیه ولی باید یه کمی مینروبی بشه. آخه من خیلی به اهمیت خدمات عمومی مینروبی ایدئولوژیک اعتقاد دارم. این صحنه جنگ خیلی کوهن و تاریخی در اومده. ولی خب شاید بد نباشه یه خونش رو کم کرد. نه مسئله خون نیست. زخم‌ها مشکل دارن. اینا تو زمان قدیم مردن دیگه. باید با تیر و شمشیر مرده باشن مرده های تو یه انگار گلوله بارون شدن میرهولد میگه که باشه روی کشتار دوباره کار میکنیم تانیا صفره سفیدی روی زمین پهن میکنه پدر از چمدون نان، کالباس، گوجه فرنگی و شراب بیرون میاره و اونا رو روی سفره میچینه آره اینطوری خوبه گرنه تماشاگر میتونه بیاد ازت بپرس ریچارد سووم تو میدون جنگه یا توی گور دست جمعی و شروع میکنن به خوردن از چیزایی که روی صفر است میرهولت میگه که شکسپیر از گور دست جمعی حرف نمیزنه پدر میگه که دقیقا خب احتمال داره آدم قاطی کنه دیگه پیراهن سفید و خونی خوبه اما تیر هم میخواییم اگه تیر کم داری ما برات فراهم میکنیم برای هر جسد تیر خوبه. نه اصلا بکنیمش چار تا که عرف هم توش نباشه. فقط یه چیز دیگه مشکل قیافه این جسد است. یه طوری انگار ناقافل کشته شدن. تعجب کردن. اینا مگه اگه سرباز اینستن. پی کشته شدن رو به تنشون مالیدن دیگه. این نگاه بهتالوت برای چیه؟ میرهولد میگه که باشه. تیر رو فرو میکنیم به همه جا. نگاه قمالوت رو هم کم میکنیم. و بهت رو هم پاک میکنیم. ممنون برای غذا بابا. میر تنها روی صحنه روی صندلی و میون کلی جسد خونی نشست. رئیس کمیسیون از میر در مورد سکوت های زیاد نمایشش بازجویی می کنه. میگه بفرمایین، بفرمایید زیاد طول نمیکششه. فقط یه سوال ازتون داریم در مورد سکوت های نمایشتون. میر هود میگه بله گاهی اوقات سکوت باعث ترس میشه. سکوت‌های من قابل سرزنشه، ولی من حاضرم همکاری کاملاً سازنده‌ای با خدمات سکوت سکوت‌های مشترک بکنم. هر حرفی با حاله ای از سکوت همراهه و این حاله سکوت قدرت وحشتناکی داره. حتی بیشتر از خود حرف میتونه توجه رو جلب بکنه. و گاهی این حاله سکوت تبدیل میشه به ضد چیزی که حرف میخواد منتقل کنه. رئیس کمیسیون میگه که پس اعتراف میکنین که بازیگرهاتون جوری سکوت میکنن که برای طبقه کارگر خطرناکه میرهولد میگه بله بله رفیق من فروتنانه از حزب درخواست میکنم کمک کنن تمام لحظه های سکوت معنادار و مشکوک رو پاک کنم رئیس کمیسیون میگه پس اعتراف میکنین که با لحظه های سکوتتون نقش رهبری پرولتاریا رو زیر سوال میبرین میرهولد با فریاد میگه فقط من به هیچی اعتراف نمی کنم. گوش های من بریده شده. رئیس کمیسیون میگه شما هزیون میگید رفیق. شما زیاد کار میکنید و همه طبقه کارگر ما زیاد کار میکنه ولی اینقدر هزیون نمیگه. میرهولد میگه که خیلی خب سکوت می کنم ولی احتمال داره سکوتم تمسخر بشه ها. این سکوت رو میشنوین سکوت طولانی دهان که رفته رفته تخر آمیز میشه. من سازنده سکوتم رفیق. رئیس کمیسیون میگه پس شما اعتراف میکنین که با سکوت هاتون میخواستین طبقه کارگر ما رو مسموم کنین. میرهول جواب میده که من از ازل کمونیست، مظهر یک شهروند گستاخم. فقط به این دلیل که این نمایشنامه سکوت رو انتخاب کردم. فقط به این دلیل که میخواستم بگم ما توی یه سکوت قاتل زندگی میکنیم و حزبی که سکوت جامعه جدید رو رهبری میکنه، یه حزب قاتله. سکوت مفرت ما هم یک ماشین کشتاره. من با کارگردانی سکوت میخوامم واقعیت کشورم رو تاریک کنم. تصاویر سکوتی که من ساختم، گلوله های واقعی و بدبویان که توی صورت تماشاگر شلیک میشن. بعد از این دیالوگ میرهولد از دختر سوفلور میخواد که تمام سکوت‌های نمایش رو هم برای میرهولد سوفلوری کنه. بازیگران نمایش روی صحنه دور هم جشن گرفتند. زنایدا گیتار میزنه و پیوتر یکی از بازیگرها. روی گچ پای اون یه چیزی می نویسه آنتوان به میرهولد میگه رفیق میرهولد میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ میرهولد میگه نه آنتوان به هر حال ادامه میده من خودم همه جوابا رو میدونم انگار تو سرتون زندگی میکنم من غریبه توی سر شمام و قدرت آزادی درون شما رفقا میدونید چرا ما اینقدر از ریچارد سوم می تررسیم؟ میخواید بدونید چرا این همه از نمایش نامه می ترسیم؟ اما باز میذاریم توی کتاب خونه و کتاب باشه پیوتر میگه میخوام همه بدونن. این زناییدار من دوستش دارم. آنتوان میگه که اوه نه قرعه کشی میکنیم ما تو کشوری هستیم که همه حق برابر دارن کی میخواد تو غرهه کشی برای زنایی شرکت کنه بقیه رقص و آواز رو از سر میگیرن. آن به میرهولد میگه رفیق استاد شما هیچی از نگرانیهای قدرت سرتون نمیشه وقتی یه شهروند در تنهایی خودش داستان میخونه هیچ خطری برای قدرت نداره ولی به محض اینکه این حرف توی جمع گفته بشه اون وقت خطرناک میشه حیجانی که یه نفر در تنهایی خودش حس میکنه خطرناک نیست ولی وقتی از رابطه یک معرکه گیر و جمعیت هیجان جمعی تولید میشه ممکنه خیلی خطرناک باشه چون هیجان جمعی نطفه شورشه تانیا فریاد میکشه انگار درد زایمان داره شروع میشه در همین حال فرمانده رو میبینیم که با یه پیشبند سفید و یه میز چرخدار مثل رستورانای بزرگ وارد میشه و میگه برای جشن این هنرمندها غذا درست کرده اما وقتی سرپوش نقره‌ای ظرف رو برمی‌داره می‌بینیم که سر زنده ریچارد سوم زیر اون بوده. شروع می‌کنن به غذا خوردن و این وسط به ریچارد هم غذا و نوشیدنی میدن. ریچارد میگه که خب ببینید هنوزم برای اینکه انتقاد از خود بکنید دیر نشده. بعد من تکرار کن. من با کارگردانی خودم می‌خواستم نشون بدم که شر جذابیت عظیمی داره. تانیا که داره به سر ریچارد کمک میکنه سیگار بکشه میگه انگار هیچ وقت نمیتونم این بچه رو بذام شاید بتونم بالا بیارمش اصلا چرا نشه از دهنزایی مان کرد؟ حزب و زنها میخواد تا جایی که میتونن کارگر تولید کنن شاید بالا آوردن راحت تر از زاییدنشون باشه سر ریچارد میگه که بله میرهولد بعد من تکرار کن تو کارگردانی جست شخصیت هم با حرفاشون بله من جلوی رفقا اعتراف میکنم که هنر برجوهایی رو پرورش میدم تانیا که درد میکشه از همسرش میخواد یه تاکسی خبر کنن اما میرهولد کاملا بی توجهه و بهش میگه که بهتره غذا بخوره تانیا میگه 25 سال هیچ زایمان طبیعی تو کشورمون گزارش نشده اینو دکترم یواشکی گفت اگه بچه ها تو شکم مامانشون بالا میارن چرا انقلاب کردیم چرا هیچ جنینی نمیخواد بیرون بیاد؟ بازیگرها مست دور میز میرقصن. ریچارد سوم داد میزنه من سوالوت امیلیویچ ویچ میرهولد تاعتری رو پرورش میدم که زاده هنر نابه ولی در واقع گندید است. پس فرمان بردار دشمنان طبقه کارگرم. ما به هنری نیاز داریم که به زندگی واقعی بپردازه. شکم تانیا، از ضربات جنین تکوم میخوره و صدای فریادهاش بلند و بلندتر میشه. میرهولد گوشاش رو میگیره و فریاد میزنه نه nah, این بچه من نیست. شخصیت های دور میز قیب میشن. ریچارد همچنان داد و فریاد میکنه و تانیا دهن ریچارد رو با دستمال کاغذی میبنده. در این صحنه دو مرد پالتو چرمی در حال کمک به تانیا برای زایمان هستند. میرهولت روی صندلی مقابلتان تانیان نشسته تا زایمان رو تماشا کنه مردای پالتو چرمی داد میزنن زور بزنین رفیق مادر هیچ وقت تلاش نکنین بچه رو از دهم بالا بیارید حزب اکیدن زایمان دهانی رو ممنوع کرده یالا رفیق شوهر یکم به امسرتون کمک کنید یکم محبت حواستون به دهنش هم باشه که اگر خواست از اونجا بچه رو بالا بیاره جلوش رو بگیرید. بلاخره تانیا به زحمت و درد خیلی زیاد بچه رو به دنیا میاره اما بچه عروسکیه که دقیقا شبیه ریچارد سومه. بچه میگه یه قصه میخوام میرهولد که خیلی بهت زده است و حول کرده شروع میکنه به گفتن یه قصه اما بچه رو قطع میکنه بابا چرا میخوای تو این صحنه پلیس سیاسی کشورمون رو دست بندازی؟ میرهولد خوشکش میزنم و بعد خودش هم تبدیل میشه به یه عروسک و شروع میکنه به خود انتقادی رفیق نوزاد من یه بابای هنرمندم که در خدمت خلقه هیچ وقت به پلیس سیاسی خلق اهانت نمیکنم بچه میگه پس چرا آدمکشایی که ریچارد میفرسته پالتوی چرمی میپوشن ما رو احمق فرض کردی تو نافرمانی مدنی رو تحریک میکنی میر هولد میاد که اعتراض کنم و بچه سریع رو قطع میکنه و میگه خفشو مرتجع فاسد خیال کردی پلیس سیاسی نمیتونه خطوط سفید کارگردانی فاسدت رو بخونه؟ همه ای ما برای کارهای تو کل آثار شکسپیر رو خوندن چرا همسران خوش وینزور رو کار نکردی؟ قشنگه، شاده، خلق ما هم به سرگرمی نیاز داره ولی تو تحریکشون میکنی، وادارشون میکنی به خرابکاری؟ بعد هم شکم مادرش رو میگرده و اصایی پیدا میکنه و با اون شروع میکنه به زدن میرهولد تو دیگه حق نداری کلمه رفیق رو به زبون بیاری تو یه جاسوس کسیفی مدارک رو نشونش بدید ناگهان صدای ماشین تحریر بلند میشه و طوفانی از کاغذهای سفید صحنه رو دربر میگیره بچه میگه اینا پرونده ی توه اینا نشون میده تو از 15 سال پیش عضو گروهی بودی که اناصر ضدده انقلاب هنری رو دور هم جمع میکنه اینجا تو بخش هنر سیاسی پلیس سیاسی ما خیلی دلمون به درد میاد هنرمنده مثل تو رو میبییم که با شک ایدولوژیک همراه شدن برگرد و همه رکپ های شک رو از کارت پاک کن این شک نمیذاره تو برای جامعد مفید باشی یا ریچارد سومی رو نشونمون بده که در خدمت انسان باشه در خدمت طبقه کارگر و ایدولوژی علمی ما برو موفق باشی رفیق بابا. تانی همراه بچه خارج میشن. مردای پالتو و چرمی میرهولت رو میدازن تو اتاق زندان. روی یک تخت فلزی و میرن. نگهبانی میاد تو و میشین کنار تخت میرهولت. پس یکم گوشمالیت دادن رفیق. بیا برات آب آوردم. حق داری آب بخوای. یادت باشه اینجا حق سه تا کارو داری. میتونی دو جور دستشویی بری و آب بخوای. اینجا اوضاع اینطوریه. اسم من سرنگهبان ویکنتیه من کنار ولگا به دنیا آمدم تو سرزمین آب و اسب ها دلم برای اسب ها تنگ شده خیلی بد گوشمالیت دادن میگن روشن فکری حیف تویسرففیغ این کار آخر اقبت نداره منو ببین نه خوندم ننوشتن ولی هیچ کاری علیه حکومت نکردم برای همین تونستم این پست رو گیر بیارم یه اسب تو خونه دارم که به دختر بزرگم نینا میرسه تو هم بچه داری رفیق زندانی؟ میرهولت میگه که زنم تازه فارغ شده. نگهبان سرت تکون میده و میگه که خوبه. خوب آدم بچه داشته باشه. فقط بچه ها از میمونن. عبروت یکم شکافته شده رفیق زندانی. اگر چرک کنه چشمت رو از دست میدی. باید زد دوفونیش کنی. اینجا درمونگاه نداره. اما من هرچی بخوای براد میارم. پول داری رفیق زندانی؟ میگه می که داره نگهبان میگه خوبه. برات یه شیشه الکل ضد دوفونی میارم و یه پومات. گفتی پول داری دیگه نه؟ ریچارد سوم به صورت خیلی ناگهانی وارد سلول زندان میرهولت میشه. لباس تمیزی برای میرهولت آورده و روی زخم و کبودی هاش پومات میزنه. میرهولت میپرسه چرا رهام کردی؟ هر وقت لازمت دارم نیستی؟ ریچارد سوم میگه درگیل جنایت هم بودم. چند نفر دیگر رو هم کشتم. زنم، ملک آنه، دوتا برادر زادم، فقط مونده کنتریچموند رو بکشم. اونم رفته فرانسه کمک جمع کنه. رفیق قسطا چرا میخواستی از من یه شخصیت مثبت بسازی؟ میرهول جواب میده چون تو نشانه شرری. بدون بار ایدئولوژی، تو یه قدرت سیاهی، ولی نشانه شر خالصی برای رسیدن به قدرت می‌کشی، نه برای رسیدن به آرمان شهر. از همدست و قربانی ها انتظار نداری برای جنایت هات ستایشت کنند. در آن واحد حال به هم زنی، ولی از خودت خدا نمیسازی به دوستی و عشق تظاهر نمی کنی. تو وحشیگری رو به حیلگری اضافه می کنی. تو نشانه چیزی هستی که انسان از دست داده. شر مستقیم خالصانه و صادقانه. امروز شر فقط نمیخواد جمعیت رو زیر سلطش در بیاره. جمعیت ستایشش هم بکنن. شر امروزی به این قانه نمیشه که توی کاخش بشینه و به دنیا حکومت کنه. میخواد تو سر مردم هم باشه و اونها رو از درون کنترل کنه. میکشه تا ترس بندازه تو دل کسایی که به تقیان حتی فکر هم نمیکنن. بچه‌هایی که امروز به دنیا میان از همون اول در خدمت شررن و تا عمق مغزشون شر نفوذ کرده. از درون همه مغز هاست که شر امروزی قدرتش رو تغذیه میکنه. میرهولد همه طرف رو که نگاه میکنه ریچارد سوم رو دیگه پیدا نمیکنه. فرمانده یواشکی به دیدن میرهولد میاد. رفیق هنرمند اینجایی؟ خیلی یواش حرف بزن و جلو رو نگاه کن. اتفاقی که برات افتاده قابل قبول نیست. چرا بهت پتو ندادن؟ صابون چی؟ صابون داری؟ و به میرهولد یتی که صابون میده. بیا، باید جوراب پشمی هم بخوای. برای حقوقت بجنگ. حق داری روزی یه بار بری هواخوری. امروز رفتی بیرون حق هواخوریت رو مطالبه کن حق داری هفته یه بار دوش بگیری ما که بربر نیستیم و در آخر بهش یه دفترچه و مداد میده و میگه که باید افکارش رو یادداشت کنه بعد میره تو این صحنه سرنگهبان میاد و چمدون میرهولت رو تحویل میده تو چمدون چیزاییه که تانیا چندین سحنه قبل خریده بود خوبه زنت فکر همه چی رو کرده با این حالت بهتر میشه من اسم می کنم زیاد اینجا نمیمونی رفیق زندانی یا ادامت میکنن یا میفرستن توردوگا چون انگار به همه چی اعتراف کردی خوبه که به همه چی اعتراف کنی رفیق آدم باید جلوی حکومت مطیع باشه من خودم هیچ کاری نکردم ولی هر وقت لازم باشه حاضرم به همه چی اعتراف کنم اگه حکمت اعدام باشه آرزوی آخر چیه میرهولد میگه که دلم میخواد یه مرغ بریون بخورم با یه بطری شراب قرمز اگه شد بزنم بگونم آزمایشنامه ی شکسپیر رو هم برام بفرسته نگهبان میگه از این چچسپیر میره هولد میگه خبرچینه اون منولو داده نگهبان میگه همین دیگه به هیچ چیز دیگه نمیشه اعتماد کرد راستی باید بزنید بنویسی که یه جفت چکمه باغونی هم برات بگیره تو اردوگاه بدون چکمه باغونی نمیشه دووم آورد ولی دیگه به حس خیانت نکن رفیق میخوام دخترم بفرستم دانشگاه ولی خودش نمیخواد بره میخواد ازدواج کنه شاید هم دانشگاه چندان مالی نباشه تو رفتی دانشگاه دیگه الان افتادی تو فتونی. با اون کچ تو این صحنه شخصیت های ریچارد سوم رو در حال تمرین صحنه جنگ میبینیم شخصیت ها آهسته حرف میزنن و فضا حالت توت آمیزی داره ریچموند و ریچارد با شمشیر به هم حمله میکنن اما میرهولد متوقفشون میکنه و میگه کات کات احمقانه ترین کاری که آدم میتونه رو صحنه بکنه اینه که ادای دوئل واقعی رو در بیاره من دوئل نمیخوام حرکاتی میخوام که جنگ بین دو قدرت رو القا کنن میخوام حیجان شوک پایانی رو حس کنم تانیا کلاه خدا و زرهشون رو بردار باید با پیراهن‌های خونی و پاره با هم بجنگن باید مشخص باشه این افراد جهنم جنگ رو پشت سر گذاشتن صحنه رو تکرار میکنن ریچارت میگه حالا چی میتونم بیافتم؟ میرهولت میگه نه اینجا بیشتر خم میشی، مچاله میشی و پیشونیت زمین رو لمس میکنه ولی شمشیر رو نمیندازی بعد بیشتر و بیشتر مچاله میشی آروم زوب میشی و خودتو دنیات محو میشه همه از صحنه بیرون میرن تانیا روی صندلی یک سینی مرغ بریون میذاره همراه با یک بطری شراب و کتابی از شکسپیر سر نگهبان وارد سلول میشه و میره رو بیدار میکنه. اشکش رو پاک میکنه و میگه دارم از عصبانیت دیوونه میشم رفیق. دخترم دلم رو شکست. آبروم رو پیش کل مردم ده برده. باید براش نامه بنویسم. ولی خوندن نوشتم بلد نیستم رفیق. بیا بنویس. با یک از رفاق با یک از رفقای مدرسش فرار کرده. یه الاغ که حتی هنوز سربازی هم نرفته. تازه اینا به درک، اسبم رو هم با خودشون بردن. دختر احمق بنویس بنویس نینا ای سگ وحشی پدرت برات مینویسه تو منو صرف چنده کردی کل خانواده شد مزهک روستا نوشتی بنویس نینا تو دیگه دختر من نیستی اگه فوری برنگردی پلیس رو میفرستم دنبالت اون همکلاسی زشتت هم میفرستی مردوگاه نوشتی اگه اتفاقی برای اسب بیفته مثل سگ شلاغت میزنم فوراً با اون حیوان برگرد خونه. بهش آب و یونجه حسابی بده. نوشتی؟ حالا از روش برام بخون. میرهولد از روی چیزی که نوشته میخونه. نینا عزیز، این رو پدر غمگینت برات مینویسه. ازت خواهش می کنم به حرفم گوش بدی. من تو رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست دارم و خوشبختیه تو رو میخوام. برگرد خونه. همه چی درست میشه. اگه دوست داری ازدواج کن. من مخالفتی ندارم. اون اسب رو هم به عنوان کادوی ازدواج بهت میدم تا وقتی زنده و سالم باشیم همشی درست میشه برگرد خونه نینای عزیزم به من و مادرت هم فکر کن که خیلی دوستت داریم سرنگهبان خشکش میزنه و بعد با عصبانیت به میرهولد سیلی میزنه طوری که میرهولت روی زمین میافته من کی گفتم میخوام اسبم رو بهش بدم ها؟ اون عصب مال منه من اسبم رو به هیچ کس نمیدم برای همینه که همتون رو تیر بارو میکنن چون قلب آدم آدمو و رو, رو میکنید. به خاطر شماست که هیچی تو مملکت جلو نمیره همه رو تیربارو میکنیم تا بالاخره انسان جدید رو بسازیم سر نگهبان گریش میگیره و کنار میرهولد میشینه چرا این کارو میکنی رفیق زندانی ببین اسب نه اسب نه جهنم من این چیزی که نوشتی رو میفرستم واسه اون طول بلی اونجایی که نوشتی اسب رو بش میدم پاک کن خط بزن من اسبم رو با هیچ چی عوض نمیکنم میرهولد سطری رو خط میزنه ریچارد سوم میاد و نامه رو از دست میرهولد میکشه جلوی صحنه میاد و برای تماشاگر نامه رو میخونه آیا اینجا قاتلی هست نه چرا من پس بگریزم چه من از خود بگریزم برای چه؟ از ترس اینکه خود را به دست خویش کی فرده هم؟ چه کسی؟ من؟ هه من خودم را دوست دارم. ریچارد ریچارد را دوست دارد. قدرت قدرت را دوست دارد نور کم میشه و فقط روی صندلی برای تماشاگر مشخصه. صندلی که روش یه مرغ بریون هست و بطری شراب و کتاب شکسپیر. میرهولت روی سندلی چرت میزنه زنایدا، دختر سوفلور از محفظه سوفلوری بیرون میاد و میرهولت رو صدا میزنه رفیق میرهولد شما خسته اید یه میل دارید؟ راستی پام رو ببینید کامل خوب شده چشم بند سیاهی از جیبش در میاره و چشم های رو باهاش میبند و بعد برمیگرده توی محفظه سوفلوری صدای دختر جوان میاد که داد میزنه آتش! ماشین تحریر مثل مسلسل شروع میکنه به ترق و تروق انگار توفنگ های نامرئی به میرهولد شلیک میکنند همه جای دیوار صحنه با گلوله سوراخ میشه اما هیچ تیری به میرهولد برخورد نمیکنه آتش! صداهای دیگری میاد سوراخهای بیشتری ایجاد میشه و از سوراخ‌ها پرتوهای نور توی صحنه پراکنده میشه چیزی که شنیدید نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی شود یا صحنه هایی از زندگی میرهولد اثر ماتهی ویشنیک بود. ویشنیک که این نمایشنامه به صورت نمادین و با الهام از زندگی و اعدام میرهولد و احتمالا خودش به تمسخور و نقد سانسور و دیکتاتوری می پردازه. هنرمندهای زیادی در سراسر دنیا تحت حکومتهای دکتاتوری با سانسور مواجه شدن و تجربه سلاخی شدن کارشون به دست حکومت که میخواد مطلقاً همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه داشتن جنبه جالب این کار ویشنیه اینه که نقدش رو در قالب یک تنز گزنده و سورعال انجام میده مثلا اون صحنه رو به یاد بیارید که نوزاد تازه متولد شده هم داره برای پلیس سیاسی کار میکنه تو چنین دنیایی حتی نزدیکترین آدم ها به فرد مثل پدر، مادر، همسر یا فرزند قابل اعتماد نیستن. توی دنیای این نمایشنامه کلی سازمان خدمات مختلف و احمقانه وجود داره مثل خدمات کشف معاصرسازی بدخواهانه یا خدمات رسیدگی به سکوت‌های مشکوک و همینطور که میرهولت گفت افراد حتی توی سرشون آزاد نیستن. میرهولد حتی به خاطر سکوت های توی نمایشش بازجویی میشه و در نهایت به خاطر اجرای ساده یه نمایشنامه کلاسیک که دهه ها در سراسر دنیا اجرا شده اعدام میشه. اما در یک حرکت نمادگرایانه دیگه تیرها به میرهولد نمیخورن و برعکس هر تیر روزنهی برای نور ایجاد میکنه. من خودم خیلی قلم و نگاه ویشنیک رو نمیپسندم. نه توی این نمایشنامه کللا برای من نویسندی محبوبی نیست. به نظرم معروف ترین نمایشناش در ایران یعنی داستان خرسای پاندا یک اثر کاملا سانتیمانسال و برای من غیر جذابه. اما نمایشنا های آسونش از این جنبه که ورود ساده ای برای آدم های تازه علاق من شده به تئاتر جذابه و کللا نویسند معتبری به حسابش میارم بد نبود که در این پادکست سراغ آثارش بریم، و البته بین آثارش به نظرم این نمای اشتامه به خاطر زیرمتن یا سا تکس که داره برای مخاطب جذاب تر. شما هم اگر نظر یا نقدی درباره این نمای اجامه داشتید برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. آدرس اینستاگرام پادکست صلف در توضیحات اپیزود قرار گرفته. دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام خالی از لطف نیست. در پایان باید تشکر کنم از زینب ساامی نویسنده متن این قسمت، مهدیس سفری که ویراستان متن این قسمت بوده و سینا سعدی عزیزم که زحمت تدوین این اپیزود رو کشیده از ویپاد اسپانسر این قسمت هم بسیار ممنونیم که در تولید این قسمت همراه مالی پادکست علف بودند. من مهدی هستم و اینجا قسمت 25 پادکست علف هم به پایان رسید تقدیم به حذف شدگان که پوچی رو نمی پذیرن اتفاقا هر روز می میرن از زنده میشن تهش این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنید کست